Hu that's a love one that السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله خالق الخلق باس الرزق خالق الاسباح بالجلال والإكرام والفول والإنعام اشهد و لا لا و أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدًا صلى الله عليه وسلم عباد الله تتق الله ابتدا انرضي اللهم کل ولیک علی حجت ابن الحسن سبباتک عليه وعلى علی آضائه فی حاده ساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدا مناصرا و دلیلا معینا و شما برادران و خواهران گرانقدر را به تقوای الهی و خودم را سفارش می بهترین زاد و توشه نه تنها برای سفر آخرت بلکه در همین دنیا تقواست. تقوا چرامت انسان رو حفظ می کند انسان را به خدا نزدیک می کند. و شیطان را دور می کند تقوی در انسان مسئولیت ایجاد می کند که به براجت این مسئولیت پیتان بیجار جرأت نزدیک شدن به انسان متقیر ندارد ولادت با سعادت حضرت خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله شب نقل مرحوم کلینی و اهل سنت دوازده همه ربیع الاول است و به نقل شیعه هیو ربی همه ربیع این ولادت نورانی را تبریج عرض می کنم همچنین ولادت پربرچت حضرت صادق صلوات الله و سلام و علیه را امیدواریم خداوند به ما توفیق دهد بتوانیم پیروان صادق و صادقی برای پیغمبر اچرم باشیم و آیه شریفه لکن فی رسول الله اصفتون حسنه را در جلو خود قرار دهیم ما در عمل و اخلاق به حضرتش تعصیل کنیم به مناسبت بلادت پیغمبر اچرام این هفته یعنی از دواز هم ربیع همه تا هید ده همه را هفته وحدت نامگذاری گذاری چرده و چه نام است و امید اون که جهان تسنون و جهان تشیع به طور کامل دست به دست یکی دهند و در مقابل دشمنانشون دشمنان مشترکشون و مکاعد دشمنان و توتعه های دشمنان و دشمنان علیه اسلام بی مقاومت کنند گول آنها را نخورند مرعوب دشمن نشوند طبعیت از رسول اچرم کنند چه پیغمبر اچرم به سوی وحدت گام برداشت و سعی شد امتی واحد به وجود آورد و به برچت همین وحدت بر دشمنان غاده آمد در نظام ما سخن از وحدت زیاد گفته شده و اهمیت آن بیان گشته روشن هم هست نیازی به استقضال هم نیست امت متفرق و پراچنده به دشمن قرار می جیرد اگر متحد باشند دشمن نمیتواند هیچ ضربه ای به آنها بزند اون داستان معروف چه پدری خردمند در آخرین ده هزار حیاتش فرزندانش رو جمع شد و چند چوب با خود داشت اون چوبه ها را به هم حیوست به صورت یک واهی به داد دست یک یک از فرزندان داد که بشکنید هرچ کردند نتوانستند اما چوبه ها را جدا کرد و تک تک ها را دست بچه ها داد به سرعت شکستند گفت قضیه شما این است اگر متحد باشید و هم باشید بدخواه شما نمی تواند علیه شما کاری کند اما اگر متفرق شدید به سرعت شکست می خورید پیغمبر اکرم برای ایجاد وحدت گام فراوان برداشت چه اگر بخواهم وارد این بحث شغم سخنی طولانی خواهد شد که متناسب با وقت من نیست تنها در این خطبه اول اشاره می به عوامل وحدت و محبت اگر بخواهیم امتی واحد باشیم باید چه بکنیم به سادگی نمیشود انسان دست به وحدت پیدا کند وحدت عامل دارد یکی از عواملش چه قرآن به اون اشاره میکند حسن خلق است اعضای یک ملت، امت اسلامی، آهاد امت اگر میخواهند متحد شوند، یک واحد شوند، جذب یک دیگر شوند، متفرق و فراچند نشوند. باید حسن خول داشته باشند به پیغمبر اجرم گفته می شدت فبنا رحمت من الله الانتلاحون ولو کنت فضن غویر القلب لم فضو من حولک خدابند لطفش رو شامد حال که تو لین هستی خشن نیستی لند تلا نرمی نر و خشن نیستی اگر خشن بودی از دورت پراچنده میشدند اطراف تو جمع نمی شدند فعف انهم و لهم و شاورهم پل امر پس برای این که اونها رو داشته باشی اونها اطراف تو باشند اولا باید گذشت داشته باشی از خدا هم برای اونها استغفار رو دعا کنیم و در کارهای حکومتی هم با اونها مشورت کنی وقتی هم تصمیم گرفتی تبکل بر خدا کن و اقدام کن در مورد ربیعه پیراندار و حسن خلق و سخن فروبان است شخصی سوال میکند از معصوم ما حد دو حسن الخلق اگر من بخواهم خوش اخلاق باشم باید چه بکنم فرمود انتلین خدا انتلین جنب و و تلقا, و تلقا اخاش به بشر حسن سه انصار رو بیان کرد محسوم برای حس اخلاق اول اینکه سخنان سخنانت پاک باشه نیشدار نباشه قضیت کننده نباشید آبرو برنده نباشه افشاگر عیب نباشد تطیب و کلام مجد سخن رو کنترل کن، آج باشد. دوم متواضع باشی، فروتن باشی در هر جایگاهی چه هستی. مقامت هر بالا هم هست اما متواضع باشی. مبادا بر فردی تکبر کنین. مبادا بر کسی برای کسی برای خودت در مقابل کسی یک رفعت و امتیاز قائل باشید خودت رو یک سر و گردن از دیگران بلندتر ببینی تلین جناهک متوازع باشی فروتن باشی خاکی باشی و انصر سوم هم تلقا خاک به بشر حسن با مردم که ملاقات میکنی با تبسم باشید متبسم باشید خندان باشید چهره باز باشد اخمونه نباشید چهره تو در هم نش تلقا عقاک به بشرین حسن این حد حسن خلق است حالا رویه پیغمبر رو نگاه کنید عجیب هست پیغمبر اکرم از کنم که مردی میاد بر رسول اکرم وارد میشود پیغمبر در جمع اصحاب بودن رو میکند به پیغمبر میگوید یا رسول الله من تمام برنامهاتو میپسندم خوب هست تنهای اشکالی من دارم در مورد یکی از برنامهات و اون مسئله حرمت زنا هست تو زنا رو حرام کردی و من نمیتونم خودم را کنترل کنم منو از این حکم معاف بدار. ببینید چه تقاضای بیمورد و غلطی از پیرانبر اکرم دارد انتظار دارد پیغمبر بشه بگن تو میخواهی زنا بکنی بکن اجازه زنا گرفتن رو میخواد بگیری از ناراحت شدند سر طرف سر یاد کشیدند پیغمبر فرمود کاری بشتند باشید به عهده خود من بگذارید بر... مرحبا این بیماران روحی و ربانی رو باید دست پزشک ربانی داد مردم نمیتونن اینطور عناصر رو معالجی کنن فرمود شما دخالت نکنید جوان دو نزدیک طلبید چنار خودش نشوند فرمود دوست میتو خواهر داری؟ بده. دختر مادر خاله، امه داری گفت بله گفت اجازه میدی بیگانگان با اینها اینها نزدیک بشن میپسندی تعملی کرد و گفت نه ابدا راضی نیستم یا رسول الله فرمود همه این چنین هستن بالاخره با که تو میخواهی نزدیکی بکنی دختری چستیست، خوهری چستیست، مادر چستیست برای دیگران برای خودت مپسند اون که برای دیگران نمیتصندید تعمل شد و گفت چشم یا رسول الله ببینید با حلم با حوصله با سعه صدر با این جوان ملاقات می کند سخنی متین میگوید او رو آرام میکند بعدن پیغمبر دست روی قلبش گذاشتند براش دعا کردند یا مثلا میبینیم که حضرت مجیسابا امام مجیسابا در مدینه برخورد میکنند با یک آدم فهاش بد زبان چه وقتی از شام آمده بود وقتی امام رو دید نه سبا نست کند شروع کرد بد گفتن به خود حضرت و به پدر بزرگوارش، بارش امیر المؤمنین امام مجتباق سر رو به زیرن داختن هیچ چی نگفتن. هیچ اکثر عمل ایمشون ندادند. او هم هرچی در چند تداشت از فخش و بدگویی گفت خسته شد ساکت شد ساکت شد امام مجتبی سر رو بلند شدن به سلام شدن آیه خود العف و رقمار بالعص و اعرض ان الجاهلین خوندن خب اهل کجا هستی؟ اهل شام عذرش و رفتن با جمله ای یعنی تو تدیز شده دست معاویه هستی که تا تبا نیست در باره ما, در ما دروغ گفته معذوری تو خب حالا چه اهل شامی؟ به مدین آمدی، در این شهر غریب هستیم اگر خانه نداری، بیا منزل ما پذیرایی میکنیم از تو هر غذایی که خواستی تهیه میکنیم نیازی داری برطرف میکنیم از کسی خواهد هستی، از تو دفاع میکنیم این جملات و مشابه با این جملات رو امام مجتبا بهش گفتن این مرد مبغوط شد من چه گفتم امام چه میگوید گفته بود دلم میخواست زمین دهان باز میکرد و به زمین فرو میرفتم از شدت خجالت بالاخره امام او را منزل بردند و پذیرایی کردند وقتی از مدینه بیرون میرفت گفت وقتی وارد مدینه شدم اگر از من میپرسیدند چه کس در نزده تو از همه مبغوض تر هست و تو دشمن تر هستی میگفتم علی و بچه هاش حالا هم میگم علی و بچه هاشو از همه دوستر میدارم از تمام خلق انسان. برادران خوهران این ها راه محبت محبت که بیاد اتحاد میاد وحدت میاد وقتی فقراء امت از ثروتمندان محبت و چرم و احسان ببینند به سربتمندان علاقه میشن وحدت بیاد وقتی ملت و دولت ملت از دولت عدل و تقوام و خدمت و محبت ببیند به دولت شدت علاقه مند میشن. وحدت بین ملت و دولت به وجود میاد تنها وحدت وحدت بین اهل سنت و شیعه نیست به همدلله اهل سنت به اهل البیت کمال احترام رو دارن و به شدت علاقه مند به خاندان پیغمبرن اهل البیت محور وحدت بین اهل تسنن و اهل آن چرا سنین نباشند در حالتی که در اهدالبیت هرچی میبینند فضیلت است کنتم اوله و اصله و فرقه و معدنه و معلاه و منتها بگذرین متاسفان های اسلامی خیلی هاشون گول خوردن یا ترسیدن اونها نمیگذارند وحدت به وجود بیاد و جرنا در بین مردم شیعه و سنی به همدلله الله وحدت ها چه و شما نمونه هاش رو کنم که مشاهده می و می این ریشه سخنه اگر دنبال وحدتیم، دنبال اتحادیم، دنبال یک انبات واحدیم، باید بر جامعه ما کرم حاکم باشد عدل حاکم باشد محبت حاکم باشد مسئولین حقیقتا مردم رو دوست بدارند و خود رو خادم ملت بدانند خداوند همه را به موجبات وحدت موفق دارد بسم الله الرحمن الرحیم دراجا امت الله و ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح الحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يجيبني حين اناادي وييسر علي كل امر ثم انا اعصيه ويعظم النعمه علي فلا أجازيه. صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد محمد عبدك و رسولك و امینك و صفیك و حبیبك و صلی على علی امیر المؤمنین و رسول رب العالمين و على صدیقت طاه رحبات محسیدت نساء العالمين و على صدقه الرحمه وامام امام الحسن والحسين الحسین سیده شباب اهل الجنه نصلي على آئمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف الصالح و الحجة القادم اللهم عجل فرجة وصفل من صرح و, و عزیزا و افتح دهو فتح یسی را و من عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده ها مناسبت های متعددی رو داریم که بعضی رو فهر و بعضی رو با انبکی توضیح عرض میکنم، اجلاس سراسری زکات بود. حقیقتا چه برنامه خوبیست؟ برنامه خوبی برنامهی که رابطه بین سربتمندان و نیازمندان را کنترل می کند قرآن مجید در مورد توجه به فقراء یک دستور کلی واجب دارد و اون زکات است که در چنار نماز آمده و روایات است که نماز بدون زکات مقبول نیست زکات هم بدون نماز مقبول نیست اما اداوه بر زکات در آیات قرآن می بینیم یک توصیه هایی به سربتمندان شده است. برای نمونه میبینید قرآن نفرماد می و فی اموالهم حق و معلوم و والمحروم انسانهایی که تبکن دارند در داراییشون حقی برای انسانهای سآل کننده و انسانهای مستضعف وجود دارد حق دارند در روایات آمده این حق غیر از زکات است علاقه مرزکات این حق هم هست که در روایات آمده می‌فرماد الحق معلوم غیر الزکات و هو شیئن یفرده رجل علا نفسه فی ماده یفرده علا قدر طاعت و ساعت ماله این حق معلوم این جهات شقیق در مال و دارائیش یه سهمی برای فقراء قائل میشه یا هر روز یا هر جمعه یا هر ماه مثلا جمعه تا جمعه مبلغ میگذاری چنار میگه این مال فقراء این مال فقرا. و میکند به اندازه تواناییش این سهم رو قائل بشمد و به فقراء بدهد آیه دیگری ویلو للمصلین الذین هم انسلات همساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون وای بر اونایی که نماز میخونن و از نماز بی خبرن جایی که نیستن در حضور خداست وای بر اینها وای بر انسانهای آکار و بعدا میفرمد وای اونهایی که ما اون رو نمیدن و یم نهمون ماون روایات آمدن برای ما ماون ما رو معنا کردن. نفرمان ماون اول قبل یا پرز ما اون اینه که شما پولی دارید تیم نیازمند مراجعه میکنه قبل میخواد میتونید بدید و نمیدید. می وای بر این آدم و بعد ول ها یو ای ماون ما اینه که شما چیزی دارید یه نفر میاد از شما میخواد آریه بگیره یه فرشی میخواد یه فضیرائی بکنه نداره به شما میگه فرشتون رو یه روز به ما بدید میتونید بدید ما نداره این ماونه ما می شرماد ما وای بر اونهایی چه ما اون رو منع میکنن میتونن بدن آریه به طرف اما نمیدن ول معروف و یا هر کار خوبی که میتونه انسان انجام بده این معونه اگر نده قرآن میفرماد وای بر اینطور انسان ها باز میبینیم قرآن که شما میخونید رال کل کتاب لا رای و فیهر. متقین و دل المتقین یؤمنون بالغیب و يقيمون الصلاه و من مار ينفقون خداوند میفرماد این قرآن متقین رو هدایت میکند و به بهشت میبرد و متقینون هایی که هستند به غیب ایمان میارن و نماز میخونن و از اونچه بهشون دادیم انفاق میکنن. این یک سخن کلیست هر چی بهشون دادیم از آنچه دادیم انفاق میکنند. محدود به زکات نیست علم بهشون دادیم علم رو انفاق میکند تعلیم میده به دیگری آب رو دادیم از آب به نفر دیگری استفاده میکند و مشکل دیگری رو حل میکند قدرت بهشون دادیم توانایی دادیم حکومت دادیم از این قدرت استفاده میکنند، کنن ممارزقناهم یونفقون پس یادتون باشد مسئله کمچهای به مردم محدود به زکات حب نیست سخن دیگر کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی رو داشتیم چه کنگره با عظمتی عجال انشاءالله موفق بشود که علوم انسانی رو دقیقا بررسی کند و هر کجای از اون با قرآن و اسلام منطبق نیست حذف کند این مسئله مهمی است. باید متون تدریسی متون چه در عرض کنم که دانشگاه و چه در زبیرستان کاملا متصدیان امر دقت کنند با قرآن و اسلام این متون منطبق باشد مبادا خدایی نچربه چی چیزی که خلاف اسلام و قرآن هست مورد؟ عمل و سخن و تدریس قرار گیرد مجلس رو داریم به مناسبت شهادت مدرس اعلی الله مقامه مدرس الگوس برای نمایندگان چه به همین مناسبت روز شهادت مدرس روز مجلس نامگذاری شده مجلسیان باید در زهد در پاچی در شهامت در شجاعت و بالاخره در مقاومت در مقابل دشمن این مسائل رو از مدربست بیاموزند. ایستاد در مقابل رضاخان قلدر تا سرحد شهادت که این عزیز در سال 1316 به کاشمر تبعید شد و با وضعی فجیع در حال روزه شهید شد امال ام رضاخان ریختند به سر مدرس و چایه رو مسموم کردند به او گفتند بنوش نوشید اما دیدند این سم در وجود ما از مدرس مؤثر نبود ریختند به سر مدرس و با پارچهی به او مشغور و خفه کردند و کشتند این مقاومت رو باید مردم ما و نمایندگان مردم ببینند و الگو قرار بدن مسئولیت نمایندگان بسیار خطیر هست وضع قانون چیز کمی نیست قانونی که باید مشکلات مردم رو حل کند قانونی که باید بیکاری را، گرانی را فساد را یا ریشی چند کند یا عقلا چند کند مسئله مهم در وقت تصویب لایحه برنامه و بودجه خیلی باید نمایندگان دقت کنند بودجه رو که برای مواردی و مصارفی تعیین میکنند باید اولویت ها رو در نظر بگیرند اهم و مهم رو در نظر بگیرند سعی کنن موارد مهم با بودجه تقضیه و تعمین گردد این مهم است ممکنه مثلا بودجه رو برای یک کار تصویب بکنن خیلی مهم نیست این کار اگر اتفاق هم نیفته آسیبی بی کشور نمیرسه یا ضعیف عمل بشه اما یک جا جای جا، مسئله جال مردم مطرحه. آب مردم مطرحه باید بودجه در این طور موارد بشه برای پیشرفت رب علم و دانش مطرح بشه و بالاخره در تنظیم بودجه عدالت ما آد شود اگر تصویب میکند مدیران هیزده میلیون بیاد بیچاره ها هم باشند اون کارجری که عرق بیری زد و به شدت، در افتار هست رحمت میکشه. اوی که دو میلیون داشته باشه اما مدیر ده میلیون این کجاش عدالت هیچ جاش نیست داره این مسعودی جات ها، امانت های الهی هست. که آن می فرمد اینا اردنال امانتها از سماوات و الارض و الجبال، که بین آن یحمل نه و اشفق نمینه. و حمله انسان، این نه کان ظلمان جهولا. می فرمد امانت رو ما بر خوف آرده کردیم. در آسمان ها عرضه کردیم اما اونها تحمل نداشتند و تحمل نکردند و مسئولیت رو نفذی رفتند اما انسان آمد به میدان و گفت من آماده هستم خیلی خوب حالا که امانت رو پذیرفتی مواظب باش ظلم نباشی جهول هم نباشی انه کان ظلوما جهولا نبادا در این امانت در عداء امانت ظلم کنید نبادا در این امانتی که به تو تحمیل میشی گرفتار جهد بشی مقام بلایت رو نشناسید ارزش بلایت رو ندینی در امر بلایت فقط شعار بدی اما عمل نکنی نبادا این گرفتاری برای پیش بیاد که اجر پیش تو جهولی. و اجر درست هم به اون چی که باید عمل کنی نکنی تو ظلوم خواهی بود مسئله دا داعش رو داریم الحمدلله نابود شد نابودی داعش هم مسئله ساده ای نیست قرآن برای این نابودی ها بیان خاصی دارد قرآن می‌فرماد باطل نابود میشه اهل حق چرا می‌ترسن چرا به میدون نمیان بیان به میجون باطل نابود میشه شما این چه به حمد الله این این وقتی نابودی به سراغ داعش آمد زرب الله مثلا کلمتان طیبه که شجره طیبه اسوه ثابت و فرق هات سما توتیق و كل کل حین به ابن ربها می فرماد مسئل کلمه حق مسئل حق مسل سخن حق مسل جریان حق مسئلش مسئل درخت است که ریشه در اعماق زمین دارد و شاخه ها به آسمان دفته مگر می شود این درخت رو حرکت داد مجرمی شاد این درخت رو تفن داد هیچ کوفانی قدرت متزلزل کردن این درخت رو نداره حق اینه اما باطل مثالش چیزه مثال و کلمت خبیفه که شجارت خبیفه اجتب فوق الارض مالها من قرار باطل مثل یک بوته می ماند. کافیست تصمیم بگیری اونو بکنی از ریشه با یک اراده با یک پشار اونو از ریشه میکنی دور میندازی نابود میشه <تصفيق> خان فراوبان دارد میشرمد و مال اولات و قاتل و سبیل الله و مصاپیننم نقد به جاال و نساع و الولدان حالا چه قدرت دارید چرا به داد بدبخته ها چرا به داد مظلومه چرا به داد اونهایی که در زیرسلته استکار هستند به دادشون نمیرسید دادشون برسید بیایید وارد بشید؟ کمکتون میکنیم قاتلوهم یعذبهم الله به عیدیکم و یخذهم و یمصرکم علیهم و یشت صدور قوم مؤمنیم بیاید وارد بشید کمکتون میکنیم و ریشه این باطل رو ریشه زول رو هم از زمین میکنیم و دور میاندازیم در مورد بعد میفرمد و ازیادو کم الله احدتها افتاین لکم فَتَوَدُونَ عَنَّ غَيْرَ دَاوَةِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ و دَارَ الْكَافِرِينَ در بدر خداوند می‌فرمازد ما دو پیشنهاد برای شما چدیم دو سر نوشت یکی درگیری جنجنده های قریش دیگر مواجه شدند با کاروانی که حامل امطیه قریشیان هست شما دوست می داشتید گرفتار جنگنده ها نشید جنگیوی جویان نشید ولی ما خواستیم بشید که چی؟ لیوه قد حق قد کلباته که روشن کنیم حق برنده باطل نابوده این خواستیم برای شما و برای دنیا ثابت کنیم برای امریکا ثابت بشود خدرت مرجعیت روشن بشود قدرت اسلام الله مشخص شود قدرت نیروی اسلام مشخص شود قدرت ایران مشخص شود و دیگر با دم شیر بازی نکند را بداند و بفهمد که ایران حجتی ها دارد ایران سلیمانی ها دارد انسان های مقتدر و و توانمند دارد خدا هم می فرماد یا ایوه النبی الله و من تبع کامل المؤمنین البته از دشمن نباید غافل شد دشمن اینجا ضربه می بیند و در فکر ضربه دیگری در جای دیگری خواهد بود ما باید بیدار باشیم و تمام توطئه‌های دشمن را خونسا کنیم آخرین سخن <تصفيق> صلایه زلزله رو هم ما فروشش نمی‌کنیم. امتحان سختی است. هم مردم آسیب دیده امتحان دادن، هم به طور فلی مردم ما امتحان دادن. چه خوب امتحان دادن مردم ما، چه خوب کمک کردند. واقعاً کمک شایان کردند. خداوند این مردم را جزای خیر عنایت کند. ان به الله دیدگان هم خداوند صبر و عج عنایت کند. اجان جان باختند ان خدا آنها را در جوار رحمتش قرار دهد. بازماندگانشون رو صبر و عج عنایت کند. مجروحین و ها را شفای عاجل عنایت کند. مسئولین هم همدلله خوب عمل کردند. سازمان اورژانس کشور برادر عزیزمون آقای دکتر کلیوند خوب عمل کرد سازمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برادر عزیزمون آقای دکتر هاشمی وزیر محترم کشور خوب عمل کردند مجال نیست برای من توضیحات کثیری مفصلی دادند که چه خدمات ارزشمندی کردند من در یک جمله عرض می‌کنم موفق شدند این عزیزان در همان ساعات اولیه 7350 مجروح و مصدوم را به کرمانشاه و بیمارستان‌ها منتقل کنند 444 و و نفر را به خارج از استان منتقل کردند برای درمان 1930 عمل جراحی در فاصله سه روز انجام دادن که این اعمال جراحی شامل پیوند دست و جراحی مغز و اعصاب است از همه تشکر میکنم کنم از فرموندهان محترم صفاح فرمونده نیروی محترم زمینه ارتش خداوند به همه آنها اجر فراوان عنایت بفرماید هر ما را در خدمت قرآن و اسلام قرار بده ما را در خدمت مظلومین و محرومین قرار بده ما را در جمره انصار دینت قرار بده خدایا مردم میگن باران نیامده من روسیه جین بیاقت رو ندارم دعا کنم الله دعاهای شما مستجاب گردد خدایا به حرمت پیغمبر به حرمت اهل الگیت به حرمت حضرت مهدی باران رحمتت رو بر ما نازل بفرمه هر برگارا ما را مشمول رحمتهای ما دید و معنویت قرار بده متفر امام سرواه متحره شهدا با اولیاءت معنوس فرمان مخبر عزیز جران قدر من را طول عمر سلامتی کامل انایت بفرمان هر برد گارا این وجود پربر چطراب و ظهور حضرت مهدی متصل بفرمان ملاه الرحمن الرحیم الى زلزله الارض و زلزاله ها وأخرجت الأربو أثقالها، وقال الإنسان مالها، يومئذ اخبارها أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشترى لجرب أعمالهم، فمن يعمل مثقال درة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال درة شرا يراه. السلام عليكم ورحمة الله Oh,